برای توسته رزق چه کنیم؟ یکی از کارهای سازی و راحت برای رزق بهتر و بیشتر دوری از گناه از گناه دوری کنیم قدمی گناه رو پیش گناه به دست خودمون انجام بشه داری زیاد کنیم در روایت زیادی داریم که موجود به از هاستی پیارونه، ونکی ریز وزیبن کنی باکامن کنی کنه کنه. ای که از کمان خوید بسیارم در تو با ری با پیدار مدار مداره مداره